کتاب کیمیا اثر نیماش احسواری کیمیا شاید یکی از بزرگترین مشکلات منتقدان دین این باشد که با نقدی روبرو می از سوی دینداران که این قرائت درستی از دین نیست یعنی وقتی ما با معقولهی به نام دین مواجه می دریای بیکرانی در برابر خود می‌بینیم. هر سخنی تفسیر خاصی دارد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 ولی وقتی با کتاب مجلد روبرو می و این کتاب قطور چند جلدی تفسیر بر قرآن است شکه میشویم که ما هیچ از واقعیت این آیات ندانسته و شعن نزول آن و تطابقش با اسناد تاریخی و احادیث نبوی و فلان و بهمان را در نیافته ایم و در نتیجه هیچ نمیدانیم. و این دروازهای دروازهی ای به روی دینداران باز می بی انتها.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 آیا خونهای ریخته در تمام جنگ ها و غزوه ها خون نبود و خونی از روح بود؟ آدمی محصول می شود و دیگر نمی با این کیمیاگران چه کند؟ به راستی که کیمیاگران حقیقی این دنیا همین شاعران و عارفان و نواندیشان دینی که از خاک طلا برون می آفرند.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 اگر ایمانشان سوز شده، اگر باور دارند کشتن، خون ریختن، جهاد، غارت، یغما همه و همه زشتی است، چرا این جامعه ننگین زتن بر نمیکنند، به جای کیمیاگری دست به طلا میبرند، از خاک طلب گوهر والا دارند.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 و اَکیمیاگران با آلاتی نامرئی سخن تازه میکنند. خود میخوانند و دیگران را از خواندن باز می‌دارند و این رنگ باختگان هر روز به رنگی درآمده تفسیر تازه‌ای از الوهیت خواهند کرد. این درد هزاران ساله را باید به کناری زد. این اباطیل بافته میان اشعار ها را باید به کناری زد. نه با آلایش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 آن کسی که خود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 نه با تکیه و کیمیای خاک که طلا به دست گیرید و به راهش جان دهید